صدای استاد آن اهل طبعت همچنان مرا صدا میزد اما من توجهی نمیکردم زیرا بیش از هر چیز دیگر به خواب نیاز داشتند. بالاخره به کنار تخت آمد و مرا آنقدر تکان داد تا از خواب بیدار شدم ربازارتار برخیز ای عزیز دیشب تو را به حال خود رها نمودم اما امشب کاری برای انجام دادن هست پشت می برو و مدادت را به دست بگیر پال نمیفهمم چرا نمیشد به جای من کسی دیگری را برای این کار انتخاب کنی؟ من نیاز به استراحت دارم واقعا قادر به انجام کار نیستم به بزرطارس نست از شکایت بردار و روی صندلیت بنشین حالا به من گوش فراده آیا مکاشفاتی را که در لندن بر تو فاش نمودم به خاطر می آوری؟ منظورم آن است که تو به مراقبه نشسته بودی نور سفیدی را دیدی صدای موسیقی شنیدی و از میان یک ماه تلای رنگ عبور نموده به چشماندازی خالی و سفید وارد شدی و من را در آنجا در انتظار خود نشسته یافتی تو در طول جادهی دراز که از میان مزارع و جنگل میگذشت به مکانی هدایت شدی که میلارپا زیر درختی نشسته بود. او به تو گفت: امروز و فردا به همراه ربازارتارس بازار برو و هرگز جوار او را ترک مکن. او در یک چشم به هم زدن به تو نیاز خواهد داشت. این موضوع را به طور خصوصی با وی در میان بگذار. باید به او بگویی که به منظور شکوفایی و توسعه امور معنوی است. در فرصتی مناسب به هند خواهی رفت. تا تحت تعلیم وی قرار گیری زیرا کاری برای تو وجود دارد که می باید در راه علت خدا به انجام رسانی آری می بینم که به خاطر داری از آن لحظه به بعد بود که تو به خود روح الهی بدل گشتی میلارپا به اطلاع تو رسانیده بود که خود را به قدرت اک تسلیم نمایی انگامی که این کردی زندگیت آغاز به تغییر نمود و این امکان فراهم آمد که بتوان قدرت را درون تو بیدار کرد تو دیگر قادر نیستی حرکتی یا فکری بکنی بی اینکه آن روح الهی جزئی از جنبش ذهنی یا فیزیکی تو باشد مردم از حکمت تو در حیرت میشوند. اینکه تو چگونه به نتیجه دست می‌یاوی برایشون شگفتانگیز و اسرارآمیز است آنها کوشش می‌کنند این راز را دریابند که آیا تو الهاماتت را از عک دریافت می‌کنی یا در مقام قیاس و تحلیل به یافته های خویش دست می‌یابی. اکنون می‌خواهم با اظهاراتی در خصوص ذهن این راز را با تو بگویم که پیش از این هم به مطالعهش پرداخته بودیم. آن دست از وضعیت های ذهنی که بین استاد و مریدش به اشتراک گذاشته می‌شوند همانند رشده های نازکی از سیم‌های های هدایت کننده می که بین استاد و جستجوگر کشیده شده باشند. البته در عمل اینها رشتههایی از نور می‌باشند، باشند این وضعیت های ذهنی همیشه در سکوت برقرار می شوند. هیچ کلامی بین استاد و مریدش رد و بدن نمی شود. هیچ نیازی به کلمات در بین نیست. زیرا شاگرد رنگ خاستهٔ استاد را میفهمد و آن را به مرحله اجرا میگذارد اغلب حتی خودش هم از اینکه این عمل را انجام میدهد آگاه نیست به ندرت اتفاق میافتد که استاد به مریدش بگوید چه کند او از طریق ذهن با وی سخن میگوید زیرا دسترالعملهای فکری از جامعیت جهانگیر تری از ادراک برخوردار است تا سخن گفتن استاد این را میداند که در نقطه ای که اندیشه به کلمه تبدیل می گردد اغلب با مشکلات زیادی برخورد می کند. زیرا انگیزش های غلیزی و اصول اخلاقی مرید به خاطر تفاوتهایی که با بینش استاد دارد در این گذر دچار بحران می گردد. به همین علت است که مریدان آمریکایی به منظور رسیدن به برخی از ادراکات دچار مشکلات عدیده ای می گردند. و وارد کشمکش‌ها و بحران های ذهنی میشوند، چون اساس و اصولی که ذهن و اخلاقیات آنها بر مبنای آن است به کلی با شرقی ها متفاوت میباشد. آیا منظور من روشن است بگذار به این ترتیب توضیح دهم آدمیان در همه جای دنیا همسانند، همگی از قماش خدا و در طبقات درون به همراه آن میباشند. ولی کن طبیعت اجتماعی و اخلاقی او به گونه های متفاوتیست. و این هم در مورد شرقی ها دارد و هم در خصوص غربی ها. و اما در همین نقطه است که مسیرها به نقطه توقف رسیده و از هم جدا می گردند. سوال اینجاست که از کدام راه می باید رفت؟ من به یک خط مش معتقدم سال سالهای سال است که سوابق اجتماعی، فیزیکی و نژادی من در مسیر این طرز فکر تربیتی یافته است. اگر یک هندوی اصولگرا را برداری و در خانه شغل و زندگی اجتماعی یک غربی بگذاری، جای بسی تردید است که آن را بپسندد. به همین منوال، تو نیز از اصول خوش که زندگی یک هندو احساس خوش خوشایندی نخواهی داشت. اکنون می‌پردازیم به برخی از الگوهای اساسی در مورد نکته آخر. بعضی از کسانی که انگیزش های نهادی و معیارهای رفتاریشان هماهنگ نیستند در به زبان آوردن کلمات مناسب دوچار مشکل می شوند انعکاس احساسات غیر منتظره اجتناب ناپذیر است این مشکل از نفوذ احساس به آگاهی به صورت اندیشه جلوگیری می و مرید نمی‌تواند مسئولیت آن را پذیرا کردند حد فاصله بین تعمق آگاهانه و ناخودآگاه طیف گسترده است این گسترهی ناشناخته در مرحله‌ای از بیان اندیشه انسانی قرار می‌گیرد که تاثیرات عوامل ناخودآگاه می‌خواهند به شکل افکار درآیند بسیاری از مریدان از های بزرگی رنج می‌برند که هنگامی ظاهر می‌شوند که او کوشش می‌کند به ترزی مناسب افکارش را به بیان درآورد که خود بتواند به وسیله مشکل خیش را ارزیابی نماید. این موانع در رابطه با این واقعیت ظاهر می شوند که آنها مایلند کلماتی بیابند که بازگو کنندی افکارشان باشد اما در این حال نمی‌خواهند افشاگر خواسته های نفس اماره آنان باشد چون این مقصودی به ندرت ممکن است حاصل شود زیرا امکان بیاناتی با این طبیعت در هیچ زبانی به آسانی میسر نمیباشد. لکن آنگاه که عنصری از توازن به معنای حقیقی بین استاد و مرید وجود داشته باشد، نیاز به رد و بدل چندانی به کلام بین آنان مشاهده نمیگردد. ارتعاشات ذهنی و معنوی موجود بین آگاهی درون آنان، معانی به مراتب عظیمتری را از کلمات قابل ادا توسط زبان انتقال میدهد. مکالمه در سکوت زبانی سری و محرمانه است که پیران طریقتهای معنوی غالباً به دان اشاره می کنند. این یکی از معمولی ترین طرق ارتباط بین استاد و مرید می باشد. یکی از مثالهای گویای این مورد نگاهی است که بین آشق و معشوق برقرار شده و می تواند بیش از هزاران کلمه گویای احساس بین آن دو باشد. آیا نگاهی را به خاطر می که آن شب در خانه سودارسینگ در الله بیش از آغاز مراقبه به تو دوختم؟ همان نگاه بود که افشاگر عشق من از برای تو بود استاد وظیفه گیج کننده و ملالتباری را به عهده می گیرد تا بتواند در جستجوی راهی برایت که با عواطف محبوس و منجمد شده ای که پشت ظاهر بی تفاوت و بی تعلق مرید مشتاقی که خود هیچ تلاشی در حصول روشنگری به عمل نمی آورد، تماس حاصل کند استاد مجبور است با ملایمت و احتیاز به لایه های انباشته ی عواطفی که همچون فنری می ماند که با فشار زیاد جمع شده باشد، نفوذ کرده و به آرامی آنها را رها ساخته و نیروی عشقی را که در آن پنهان گشته آزاد سازد از سوی دیگر طالب آرزومندی که پیش از آن همواره در جهت مخالف رح پیموده است میل دارد که این کلاف پیچیده اواتفش را بیش از پیش بپیچاند تا نگذارد استاد حقیقت آن را فاش نماید این عمل به روش صدای سکوت یا آوای سکوت انجام می‌پذیرد. همان مراحلی که هنگام مراقبه ما بین استاد و مرید جای تردید است که یک استاد حقیقی با مرید فیش رو در رو شیند و یک های که ها و کتاهی او را علنا به وی گوشزد زد کند یا نشان دهد خیر این را به تو میگویم که بسیار به ندرت اتفاق میفتند یا استاد به کسی بگوید چه مشکلی درون وی وجود دارد بلکه او روی خطای وی تمرکز داده و تغییرات لازم را از درون به بیرون منتقل می نماید به اینکه که برای مورد به همراه داشته باشد و اغلب حتی خود جوینده از این اتفاق خبردار هم نمی شود و اما این عمل به واسطه استفاده از عشق مویسر می گرداد. عشق فلسفه حقیقی قدیسین است نه آن عشقی که در این جهان به نمایش گذاشته می شود و که بالاترین نوع آن و اکنون باید بگویم که فراسوی طبقه پنجم طبقات بیشماری وجود دارند یا دا که در اینجا به بحث درباره آنها نمیپردازیم از این طبقات جریان عظیمی از عشق به تمامی جهانهای پایین روان است اقتصارا یادآوری کنم که درون آخرین یا تحتانیترین ترین عقالم فضا بیش از ده میلیون عالم وجود دارد که در آنها حیات وجود دارد. اگر تصور این واقعیت برایت مشکل است، فعلا دربارهاش اش فکر نکن. عدم قابلیت ایثار عشق و در نتیجه امتناع از ارزانی داشتن آن، ناتوانی در دریافت عشق، اساسی ترین عامل ایجاد همه ی مشکلات وضعیت انسانی می باشد در روانشناسی می گوییم این عامل موجب به ظهور رفتیدن بسیاری از انواع ناهنجاریهای های عصبی به ویژه شیزوفرنی می باشد. طفل نحیفی که از نقط نظر بیولوژیکی مطلقا نیازمند به گرمی و توجه مادر می باشد، از نظر معنوی نیز به همان شدت نیاز به محبت و عشق دارد. اگر از این ضروریات محروم بماند، تنها یک راه برای ارزای نیازهای قریضیش باقی میماند ماند، این که درون خیش به جستجوی آن پرداخته و در نتیجه دچار عشق افراطی به خیشتن گردد. در دوران بلوغ، این اشق به خیشتن ممکن است منجر به خود ارزایی گرشته و چرخه درونده بیافریند که اینجا به خجالتی شدن، تمایلات ضد اجتماعی، پرهیز از معاشرت و وضعیتی از گوشهگیری مزمن گردد که دیگر نتواند از آن خارج شود پس میبینی که استاد اک با مسئولیت بزرگی در رابطه با گشودن قلب مرید به روی عشق روبروست اگر بدون رعایت احتیاط و مراقبت های لازم به این عمل اقدام گردد ممکن است از وضعیت تعادل ظریف عاطفی خود خارج شده و به یک عامل زائد و مزر برای حملنانه خیش بدد گردد و اما قانون این دنیا از این قرار است اگر توجه آدمی بر روی عاملی متمرکز شده باشد که به او لذت میبخشد در صورت حس آن عامل احساس درد به او دست می دهد. پس میبینی که این قانون طبیعت بسیاری از آدمیان را وادار می سازد. توجه خیش را به طور دائم بر موضوعی متمرکز کنند تا عدم تعادل هنگفتی از طریق لذت و درد در عواطفشان رخ ندهد به گوشزد گوش زد کنم که معنایی که از کلمه بیتفاوتی استنبات میگردد معمولا از حد دور از دردی و شفقت به نظر می آید. منظور از این اصطلاح از دیدگاه معنوی این است ما در وحدت با همه آنچه آن چه در قید هستیست از همه چیز تا به حد معینی درد و لذت احساس میکنیم ولیکن تا به حدی که موجب به برهم خوردن تعادل عاطفی شده و از هان ما را به نهایت قطبین شعف و اندوه سوق دهد کنترل عاطفی به معنای واقعی در رابطه با کنارگیری از ترس حاصل میگردد انگامی که بتوانی این صفت مهم الهی را کسب کنی و نسبت به حراس های انسانی بی تفاوت کردی از زندگی شرفانگیزتری برخوردار بر خواهی گشت آری تو خواهی توانست شعفی آمیخته با درد داشته باشی و از هیچ یک مانند گذشته متأثر نشوی. تنها تا زمانی که ترس حاکم بر نهایت های متضاد درد و لذت باشد زندگی تو به های مادی ذهنی و معنوی وابسته خواهد بود دست از ترس بشوی دیگر نیازی به دست برداشتن از هیچ عامل دیگری در زندگی نخواهی داشت بالاترین درجات شعف هم از نظر مادی هم ذهنی و هم معنوی میتواند از آن تو باشد در حالی که با حد لازمی از اندوه به تعادل رسیده باشد البته اندوه به سراغ تو خواهد آمد اگر والدین از این جهان درگذشتند اندوه تو از بابت مرگ آنان نخواهد بود بلکه علت آن این است که آنان دا دیگر در این جهان ملاقات نخواهی کرد اگر ترس از زندگی تو بیرون رانده شده باشد پس این یک احساس عاطفی حقیقی می باشد که به اقدیم روانی تعلق دارد این در خصوص مادری هم که هنگام ازدواج دخترش عشق می مستاق دارد آیا او از اندوه می شاید ولیکن آمیخته باشد. است اکنون در مسیر بررسی خود به نقطه ای از مشکلات مرید می‌رسیم که قالبا کارما خانده می شود. آیا به خاطر می که در ضمن یکی از مراقبه هایت بعد از مطرح کردن چند سؤال گفتم که استاد کارمای مرید را به خود می گیرد؟ از شما این موضوع را درست نفهمیدید و حتی باور هم نداشتید هر وقت این حقیقت دارد لیکن نه که تصور می کنی. آافخوا آن بسیار ساده است. انگاری که مرید از استاد وصل دریافت میکند و بدل درونی ظریفی بین افکار آن دو به انجام میرسد. در روانشناسی این سیستم را انتقال مسائل عاطفی به روان پزشک مینامند. این مشکلات عموماً های ذهنی می‌باشند. واقعیت این است که بسیاری از بیماری ها یا های ذهنی و مشکلات دیر حتی تناسخات از سوی خود شخص اعمال شده اند. و این کشمکش های معنوی میباشند که خود را به عوارض جسمانی موسوم به بیماری تبدیل می کند استاد به راحتی می تواند ببیند که تمامی محتوای کارما در یکی از الگوهای شناخته شده قرار می گیرد. او می تواند در یک نظر توهمی را ببیند که روحی که به او روی نموده است از آن رنج می برد. مورید معمولاً با بزرگ کردن موضوع باور می کند که کارمای عظیمی برای او رقم زده شده است که می باید نماید و با این توهم ذهن خیش را در گیر زنجیری از گناه عذاب وجدان و سایر احساسات آتفی منفی می نماید. در حالی که این در واقع روند صعود دادن ذهن از قطب تحتانی به سوی قطب متفاد می باشد. استاد عالمان به مرید فرصت می‌دهد مشکل خیش را در ذهنش نسخار کند و به این ترتیب روند انتقال آن را به معلم خود به پایان ببرد البته من میتوانم با قدرت اراده این نیروها را خنثی کنم ولیکن ابتدا میباید آنها را از شانه مرید بردارم این فعالیت به دو صورت انجام میپذیرد اول در صورتی که مرید به علت من شدن ها و سرکوبی دوران نخستین رشد آرزوی سیرینا دارد که مورد عشق و محبت قرار گیرد. و به سرعت پیوند عشقی که از حد تعادل متجاوز می باشد با استاد برقرار می نماید. او برای مدتی به حال خیش واگدار می تا عواطف خود را تنظیم نموده و به نیروی متعادلی، حاصل از وفاداری و جانسپاری حقیقی به استاد بدن سازد آنگاه او این قابلیت را خواهد داشت که بدون نیاز به حمایت من روی پای خود به در حالت دوم مرید کارمای منفی خود را در غالب احساس خصومت و تنفر به استاد انتقال می دهد به وقت خود این مرید هم یک پیرو حقیقی ایک شده و تنها بالاترین درجات جانسپاری و عشق را به استاد معطوف خواهد نمود. به عبارتی این روشی است که من با استفاده از آن کارمای مریدان خود را برمیگیرم. اما اگر کسی کارمایی داشته باشد که باید خود به تنهایی آن را تحمل کند چون فقط نران صورت است که درس لازم را می‌آموزد. آنگاه قانون خود من مرا بر با می‌دارد که کناری بیستم و بگو دارم او بدون کمک من آموزش لازم را کسب نماید تا روزی که دست به سوی من دراز کند و بی هیچ افسوس یا احساسی از پشیمانی سهم خود را از عشق من برداشت کند و با آن به مدارج بالاتر دست یابد بدون تعارف باید بگویم همان گونه که همیشه مواظه کردم برای تو بیش هر چیز شناختن خودت مهم است زمانش که فرار رسید مرید میآموزد چگونه معنای عشق و نفرت را درک کند. و در خواهد یافت که هر دو در روح خودش انعکاس مییابند. به این ترتیب خواهد توانست موجب به بازپروری خیش در عوالم معنوی گردد پیش از آنکه به پایان این مقوله برسیم، به گذار یادآور شوم که تو میتوانی با استفاده از زور از شر یک عقده یا یک تشویش رهایی حاصل کنید اما استاد اک می باید آن را بردارد و خلعه حاصل از آن را با عشق پر کند آدمی تا ابد در جستجوی عشق است او حتی در زمیر ناب خداگاهش هم هرگز گرمی بدن مادرش را فراموش نمی کند بنابراین با رؤیای اقبال بهتر در زندگی بعدی آرزوی بازگشت به رحم مادر و تولد دوباره را به همراه خود حمل می کند. این گونه است که آب برای او سمبول تولد دوباره شده است. این سمبولیزم بسیار مهمی است که در متن افسانه شناسی و ایدولوژی کودکی آمده است. تالس فیلسوف یونانی گفته است که آب منشأ و رحم همه عالم مخلوق است. این رمز قاعده که لقاه منشه آدمی در مادر صورت میگیرد تا به حد کالبد کیهانی من گسترش یافته است گاهی قهرمانان افسانهای و جنبش های معنوی در میان آب زهدان زاییده نمیشوند، بلکه مانند موسا و نوح در آب یا روی آب پیدا می شوند این مفهوم معنوی است که از مایع مشایمعی استخراج شده است ای که درون پرده جنین جمع گشته و هنگام تولد بیرون می ریزد. بسیاری از تعبیراتی که از کتب مقدسه در خصوص استفاده از آب مانند قسل تعمید به عمل آمده است بیش از حد آمیز و آسطوره می باشند. ما میدانیم که با توجه به اهمیت عمومی روند تولد آب از نظر سمبولیک با پاکیزگی و آمرزش گناهان مرتبط شده است مردم آرزو دارند گناهان خود را بشویند و پاکیزگی از نشانهای الهی قلمداد دادگشته است تمایلی که ما به شستن دست داریم تقریبا همیشه در رابطه با نیاز کارمیک ما به منظور رهایی از احساس گناه می باشد و معمولا از واقعیات است که به طبیعت تحتانی تعلق دارد در خاتمه میگویم که از این بابت دلگیر مشو که استاد با تو سخن بسیار نمیگوید گوشهایت را باز کن و به صوت گوش فراده زیرا این منم که با تو صحبت دارم و همواره تو را آگاهی میدهم